گرایی چیست انواع استتگرایی کدام هااند چگونه استتگرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان از است؟ راهکارهای کارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن بر ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همرا در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر فریدی از رادیو آنلاین راهبرشان شنونده باشید. و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی مسسه مطالعات اقتصاد و حقوق افغانستان السو سازمان اجتماعی صفحه و رادیو آنلاین راه سلام دروت. و درود وقت شما بخیر و برنامه افغانستان خوش آمدید در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی کشور کسرتگرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی میگیریم چشمانداز این برنامه بررسی کارایی کسرترای برای گذار از منازعات و حل چالش اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برایند آن به افغانستان سلحامیز و مرفع در پرتو اندیش های دست یابیم. کسترگرائی چیست؟ نگاه علم مدیریت و رهبری به کسترگرائی چیگونه است؟ نگاه کسترگراء به مدیریت امور کشور بحران آفرین است یا رای حل بحران کسترگرائی در مدیریت بحران چه نقش دارد؟ چگونه از کسودگرانی در راستای حل منادزاد و مدیریت بحران برای رسدن به افغانستان سرحامیست و مرفق به نماییم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم این سؤالات را با کارشناس علمی برنامه کاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد خلیل رحمان سروری از اندشمندان و پژوهشگران افغانستان در عرضی علم مدیریت. نویزینده کتاب مدر بحران و استاد پانتونی کابل است جناب استاد خوش آمدید به برنامه کسرتگره برخانستان من راز کردید من سلام با خدمت شما به این کارانی عزیز چونم دلال دلال و دلال دلال خطان شکر جناب استاد به نظر شما کسرتگره چی هست؟ از چیگونه نگاه کسرتگره یا اندیشه کسرتگره شکل کرد؟ ما طور که شما می‌دانید در واقع دستورگرایی به معنای دو تا تعبیر متفاوته نسبت به دستور یکی موضوعت تناوب تفاوت‌ها در ابعاد مختلف از جهات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، مذهبی و بس یکم پذیرش تنواد هست در واقعی بحث اصاسی که قصدگارایی مطرح نکنند پذیرش و شناخت تنواد مختلف به ساختاهای اجتماعی جامعی اموزیست امون که معلوم هست جامعی ثانی از بکر پیدایش تا مقنون تنواد مختلف مختلی در حوضه های اجتماعی سیستی، فرهنگی، کرداری، دستوری دفتاری، بفتاری ما از حاضی مستلی، از حاضی سیستی، از دینی در واقع ما اونیدیتی این تنوات در درومی جاو ممسانی بیمانی فرکتی این کارنا تذیر متجابیست ادوار استگرایی شما و پذیرش این تنوع است نا مولودیت نهری این تضاد و تفاوت ها و تنوع زامونی جوامع انسانی با سمت استوار حرکت میکنند که این تفاوت ها و این تنوع وجود دارد ترس نیا چون گستر و مولودیتی تذیرش قرار بگیرد و تایید قرار بگیرد و اساساً نوعی تنوع موجود صافتار من خیلی زندگی ایچ انسان خواهی شد و به دوری تنوار زن گفتگوی شد و دیالوگی وجود بنده هست لباکی از اینجاز که بحث گفتگوها مطرح میشه دیالوگ ها. سولبر هوم متا همیشه به این جاره ها گفت و با ها که این تنوع گفتاری، تنوع فرهنگی، تنوع ناصری که سیاسی منجر می شه به جامعه بسلط. تشکر جناب از نظر شما به عنوان یک پژوهشگر افغانستان به طور پژوهشگر در عرصه علم مدیریت چه رابطه بین مدرنیات خلاق و کسبتگرایی می‌بینید. ا اساساً در بحث مدرنیات چیزی که بسیار متأس است است که با تناسب افراد که در ها که کار می‌کنند تفاوت‌ها وجود داره. میلیون‌ها دمی که در ها کار می‌کنند با ها تفاوت کار می‌کنن در زندگی. در واقع مدیریت و رهبری در سادمان ها موضعیت و رهبری این تفاوت هاست شما از راویه تفاوت با این افراد تماس نگیریم، و با موجود این تفاوت ها و در درون سادمان ها از گفتاری، از بحاجی گفتاری، از بحاجی, از بحاجی فرحنگی، از بحاجی مذهبی وجود دارد تماس نگیرید. تا بیتن شما نمیتوانید این کار بسیاری درستش کار بیانداز در هر زاویه از باست علمی مدلیت شما نتوانید تفاوتها و را رو کنید. در واقع نمیتوانید با همکاران با نیویی تانید در دون تماسی سازنده بگید در واقع تعمیمی رابطه از در واقع کمک می کند برای درست به کار نیم. نیم. به هر پیمانی که مدیران به ساد منها بیتوانم. با درکی خصوصیات ویژگی ها مشخصات و تفاوت های فردی افراد تعامل کنن با اون اندازه یا با آمانسته میتوانن یه انسانی به روی اصابت ها خلاق و مبتکی در واقع در واقع گفتم شد که بس کلانی از در اصابت ها درک تفاوت است. بیرونی درک تفاوت ها و بیرونی شناختی از این تنوع مختلف شما نمیتوانیم با افراد رابطهی سازنده هر پیمانی که رابطهی سازنده در درون سازمان ها در میان نیویتسانی و حوض در کمک میکن برای مشارکت محصر. مشارکت موثر زمینه برای همکاری گروهی و سازمانی پراکه میتوان. همکاری گروهی و سازمانی در درون سازمان ها بیشتر برای خلاکه و نواری وجود میاره. در واقع گفته می توانید که درکی تنوع تفاوتها در عباد مختلفش منجر می شود بر ایجاد همکاری و همه در درون سال من. ایجاد همکاری و همه در درون سال من. منجر می شود بر اعتماد بیشتر اعتماد بیشتر زمینه می سازد برای مشارکت موثر مشارکت ماسته فسار برای خلاقیت و نواباری به وجود می آورد من که بسی کسترگرام این پذیروشی تا و درکی تفاوتها امده فر نامیل است در زمین استوازی یا ایجاری هزای خلاق و زمینه های بشتری نواباری فراری درست به کار نیروی انسانی یا مشابه فرصت و بشاعت جناب با طرح به مطرح کردیم در میان موضوعات نگاه علم مدرنیته و کسرتگرایی چگونه است آیا از منظر علم مدرنیته کسرتگرایی فرصت آفرین است یا بحران آفرین ا من می‌دانم است که در واقع مدرنیته هدایت درست تفاوت هاست طبیعتاً بدون درک درست از تفاوت ها منطقا را هدایت من و رحبه و تدار انسانهایی های در سازمانها کار می‌کنند، تفاوت وجود دارد میلیونها انسان با میلیونها خصوصیات و تفاوت زندگی می مدرب‌ها بحثه های مدیر تصرفداری مون هم برای ا شرکت کنندگان برای تحصیلان برای و طلاب علوم خانبارها یادآور شدیم که شما زنان می توانید یک سازمان را درست مدیریت و راهبری کنید یعنی روی انسانی شامل در درون سازمان و با و تفاوت هایی که داره بشناسید این تفاوت رو بشناسیم پس اول شما اون ها رو و پس از پذیرش این تفاوت ها رو در مسیح کار بیان و بیدون این مسیر امکان استفاده موثر و درست از نیروی انسانی در تمام سازمان ها میسر نیست و بیدون استفاده موثر هیچ سازمانی بتوسعه و ثبات نمیرسه. در واقع هیلین مدرگیت گفتم میتوانم که بخش اعظمی از کار فعالیتش، مداریت مداریت مداریت و فعالیتش مدیریت تناوات، و مدرگیت تفاوت ها و مدرگیت خصوصی های متفاوت است که میگه به انسانی در سازمان ها داره بنابراین دار در تنوعاتی که در درون سازمان ها وجود داره و در میان نیروی به شهری سازمان ها در حقق آفرین هست به صورت مهد میخواستم به مینجم برسن زمانی که ما بیتوانیم انسانها را با تواقیب تفاوتها و تنوار و خصوصیات و جگه های متفاوتشی را را در درکنیم و دپذیرین در, در واقع میتوانیم فرصد رازم اینهای بسیار بهتر و بیشتر و برای توصیح معستی و با کارانداختنیم توصیمی به انسانی کار میدازم ما باروهای ادوه شدیم اتا در برس و در نفشه های خودم نیروی مشاهده کردیم که ما زمان میتانیم نیروی ایسا درست به کار بیندازیم که بهتر درک کنیم چرا اصلا منازعات و تعاوزات ناشی از دم درک طرفین است عرصه اگر ما بیتونم نیگه انسانی درست با و تفاولت که دارند درکنیم این که در واقع ما پنجاه ها مسیر موفقانه تایی کردیم یعنی در واقعی بخش اعظم درست با دارن داردن انسانی بخش شناختی انسان این که در عباد مختلف انسان دارن پس گفتن می پذیروش درک تفاوت‌ها، پذیرش این تفاوت‌ها، تفاوتها تفاوتهایی که در عباد مختص و از دیهاز گفتاری از دیهاز رفتاری از دیهاز فرهنگی، از دیهاز مذهبی و از دیهاز سیاسی دارن این فرستت فراهم نکنند برای از اینکه این نیرو این سریتر درستر و معسستر حرکت کنند اگر نتوانیم این تنواد را بپذیریم در واقع این موجب از فرو افتادگی، تارزا تصاد ناکارگی کمکاری می شود من باورم بهیست که کسرتگرایی استفاده از این تنوال به شکل مؤثر موجودی ایجاد فرصت و حرکت معصر در تاثیر سازمان اجتماع نظام شود. به نظر شما اگر جامعه افغانستان را به این عنوان یک سازمان کلان در نظر بگید آیا افغانستان یک جامعه متکسر هست؟ ماهیت این جامعه متکثر است بر نظر شما و چیونه مدیریت کارآمدی امور را با ماهیت متکسر افغانستان سازگار بسرد؟ تقدیر ندارم که تمام جامعه در روی زلم متکاسی هست. هست جلوی بیگان است که اساسی ساختارمند در جوامع انسانی باشه. شما حتی خانواده ها رو پیدا کرده نمیتونین که اینا یکسان شه. شما حتی افراد رو پیدا نمیکنین که اینا یکسان شه. با گذشت هر روز اینا متغیری شد، مثلا متغیر حرکت. ببین تنوع جزئی زندگی اجتماعی امسان هاست اما تو جامعی افران جامعی متکسیر است شما از به حاضی فرهنگی ما این تنوع و این دفعوت از به حاضی مسهلی این مسائل دارم از به حاضی سیوسی ما این تنوع دارم از به روش این تنوار دار. در واقع کمک می کند برای یک دیادو گفتگوی معستر در در اون جامع به صداد می که در واقعی گفتگو شده, شده. این, ها. این ها و باقی این و که انسان رو در مسیر کمک می کند. اگر ما این تنواد رو در واقعی گفتمان اجتماعی شکل داره موجودیت این تراواد از برای ایجاد گفتمان کلان ملی در سطح کشور این گفتمان ها به مروج بیشتر میشه شما هیچ به هیچ صورت نمیتونید توانید وادار کنید یک جامعه را که دیگونای گوری بشه چون جوزی وقت های وقت های زندگی شما دیدید دو تا در اینه مثلا بشید بسید استترویسم به base na egal engori egon بیمی شما همه افراد باید متو اگر داخل اگر کسانی که از این شما مشخص یا اندازه شما مشخص اگر طولانی در درستر بود باید این را کوتاه اگر اندازه شما کتاه بود باید کشف کنیم دراز کنیم یعنی شما باید جامعه رو با آن با به اندازه که خودتان تصفیق کردیم اندازه گیری کنیم ولکه شما با جامعه نظام و سازوانی و را به کدام طرف میبریم طبیعت است طرف نابودی میبریم شما اگر دراز بود باید پای یا سرش کتاه کنیم اگر کوتاه بود باید کشف کنیم دراز با، با شما سازیم به اند در طرف مقابلش بسی کسی کسی در یعنی شما با اندازه ای انسانها وستایل اندازه گیری داریم. هر کسی به اندازه خودش اندازه نکن. در وقتی به این معنیست که شما اندازه های مختلف را میپذیریم. و هر کسی به اندازه خودش به وضعیت خود را با متفاعده و تنواد خود را بکار میاندازه. بابا وارد پای اسکیه و بحث گسترده روی صبح متوسم ا لبن دموکراتو در واقع امده در ابزار توسعه بس گسترده شده این در واقع گستر گروی به معنای به معنای پذیرش رو بر اساس شناختن این تنوع و استفاده موثر از این تنوع است امصافا به صورت تحریری و ذاتی انسان ها متنوی خلق شدن متنوی زندگی میکنند متنوی, متنوی رفتار میکنند بس اگر ما نتوانیم این تنوات را درک بکنیم و بپلزیمیم طبیعتا جا میره به سمتی بیصوراتی به سمتی بیعدالتی بی و بی به بین به این همیست که انسان ها را با،, با،, با،, با ساختار گفتاری و ساختار کرداری جو پاید بپذیر و این, این, این گفتارها و این درطاقها و این عمل کردها را دست بسیاری دورتش بکاری من یکی از چیزهایی که در بیستر تاریخ اصطوات افرانستان را از بشتر آزید پذیر صافتن امو افزار یا اندازگیری یکی اونه انگاریست که ما جامعه را به اوندازگیری کنیم مگر کوتاه بود دراز بسازم مگر دراز بود در کوتاه بسازم که در این اقدام مو بخش اعظم یا جانه رو باشید در آسفت اصافه دلصف ما باید افزارهای بیسازیم که انسانها را به اندازه خودشان تفاقل را به اندازه خودشان باید میساز کنیم می به اون به ایساس مفیگر که ما پاکستان نیاز داریم که باید بستر روزنی برای باید کسیدگرایی فراهم بکنیم و یک دیالوگی میدید تبدیل بکنیم بپذیرم چرا اصلا شما میتونیم که انسان ها تا زمانی که یک دیگر را درک نکنند نمیپذیرند خب درک دیگر از کجا آغاز میشه درک یک دیگر از از گفتگوها آغاز میشه ما با منظور درک یک دیگر با زمینی گفتگوها را فراهم کنیم زمینی این گفتگوها در واقع کمک میکن برای شنافتی دیگر به هر قیمانه ای که انسان ها دیگر را درک بکنند و بشناسند میپذیرند یعنی نظار تعارض و کشمکش در درونی نوشی از نسونی ناشی از درکی طرف است پس درکی طرف از بیستری افتگو برای میشه این بیستری افتگو کمک میکنند برای پذیرش این, این تنواد و این تفاوتها و این خصوصی های این های متفاوت که اینسان ها جوابی خانواده ها و اشخاص و اشخاص دارن در صورتی که ما نتوانیم بیستر و فراهم بکنیم طبیعتا ما دوامدار مثل دیگر بدبین به اعدمان در هر از گاه ما رو میبره به برای تنازی یا نزایی کلانی که ممکنیم حتی دست کشورمون کشور جا برکنیم جنگ درگیری به تخابل تلام جار با اون حال شما سرمت رو گردیم بدون اجاد گفتمان تلام در جامعه و پذیروش ای این تفاوت ها در عباد مختلف ما نمیتونیم جامعه رو بستم تثبات شکر جنرمستاد با توجب موضوعات اساسی که مطرح کردیم پذیریش تنوعات و پذیریش تفاوتها در ختم زمین سازی بشرفت و توسعه افغانستان است. چگونه به لحاظ مدریتی به اساس شخصای مدیریت، و علم مدیریت چگونه پس از پذیریش این تفاوتها را و این تنوعات مدیریت کنیم که تا به پویای افغانستان دست پیدا کنیم افغانستان پویا و در حال توصیح و در حال رشد داشته باشه. چیزی که این رو در بحث مدر یک و مخصوصا در بحث مدر بحران مطرح میشن چه زمان ای سادمان ها به بحران میرن چه زمان اجتماعات در جاومی میره به سمت سمت بحران زمانی که رابطه افراد و اشخاص میگو انسانی و انسان ها در جاومی به سادمان ها بر مبنای واقعیت ها شکل نگیره یعنی در واقع اساس این دوابی شناخت و پذیرش و درکی دیگر نباشه شناخت پایین و درکی پذیروش معلوم منجر میشه به تعارض این تعارض ها زمین میشه برای بحران هایی که آین سایسته کشور را میگوید به سمت بیستواتی یا طب ماندگی خلی حاضر ایزمی مدرگیت با برای بعضی بسیم بحران ما باید بعضی از عوامل که به صورت واقعی جامعه و سمت بحران میبرن و به این آنه های خزنده مطرح در آمین اینها رو باید بشناسیم و باید بفهمیم یکی از چیزهایی که مطرح میشه عدمی پذیرش است ادن این پذیروش دیگر ادن این پذیروش این تفاوت در درونی صادمان اغلب اغلبان که مشکل با مشکلی، با مشکل مواجه میشن پیشت کردن ها کردن در واقع اینا نتوانستند دعوی که انسانی داشته باشن مدیران کارکنان با داشته باشن در واقع ادنی این دعوی که استازنده میشه یک تاور و تزار این تاور و تزار سرمایه بر را به یک سمت تقاضی کلاسی این سمت این این تقاضی کلاسی چیزی از سم و فرو در درم و دستوری مختلف میشه بود تو این یک تا بحث مسئله بحثی بون دست نگاه کار این نگاه کردن این گفتگو یعنی به معنای که ما اجازه ندیم که گفتگو ها شکل میگو گفتمان بوجود گرد چرا خود این مطرح کردن این گفتگو ها و تقابل این گفتگو ها و ترنتیجه فرهم ساختن برای زمینه های مؤثری گفتگو کمک می‌کنه که ما از یک حالت اصطابه ایوالا چه پویاب نیسه در ربانستان ما در اواد مختلف در, در بخش های سازمانی در بخش های مختلف اجتماعی ما دچار چهار مشکل بودیم ما یازه نمی که افراد حرفشان رو چه برای گفتن دارن و ما یازه نمی دادیم که رفتار خودشان رو در ما تلاش میکردیم که افرادها رو ما آنچه را که ما برشکوت بذاری کردیم و تا بگیم کلوهای عمل کردن در واقع خودش پازورا به اعتماد می‌سازه، سمپورتیک بشه داد. اپسوایش میت و جان داره می‌ذاره میبره سمت یه یه ادبی مخصوصا مخصوصاً میشه به بحران هویتی انطور منتج میشه به بحران عدم مشروعیت چرا ساختار خارجی است، من استدلال در واقع مشروعیت خود از پذیرش و از اون طریق همکاری مردم از ایزازان می‌گیره اگر نتواند ملت و مردم با بیرونی مستور داشته باشه در واقعی فاکری مشروعیت می بشه در واقع مشروعیت میشه این فاقد فاقد مشروعیت مشروعیت مشروعیت ممكنه به دوران به دوران ماشي به سمت بحران نفوذ در زمانی که در در جامعه سی و, و, و با هم سران گفتگو داشته باشند و و نتوانند خواسته‌ فراهم کنند تا سیاسی میخلوان جامعه با اله ها گل بزنند در واقع این بخواند به خود به نتیجه تاثیر افرادی که كده الاختلاص در قدرت داشتن نفوذ خداییت افراد از دست ميدان نميد در واقعی مردم نسبت به اونها بی‌اعتماد میشه، منتج میشه یک بحران نفوذ که دیگر باقر باقر باقر باقر با گپ با گپ حاکما و وقتی که واسه افرادی حرفی افراد موجود در قدرت دیگه کسی اعتماد نمیکنه، منتج میشه یک بحران نفوز نفوذ که بحران نفوذمون سرانجام کشور کشوره میبره به سمت بی‌ثباتی. چهشکرم که ممنون از حضور شما در قسمت برنامه همراهان گرامی ممنون از همراهیتان در برنامه کسلتگیرای افغانستان بعد از اگر فیک کتاب دوباره برمیکرد. 친مندان بر امراحان گرامی و ادامه بحث برنامه کثرت‌گرای افغانستان خوش آمد. مهمان من جناب استاد سروری، استاد پانتونی کابل از دولتشگران و نخبگان علمی کشور است. جناب استاد به برنامه خوش آمدید. در قسمت سوال و گفتگو می‌خوام مطرح کنم که نگاه کثرت‌گرا از سوی مسئولان به امور افغانستان و امور کشورهای بین‌الملل در افغانستان بحث کنیم در داخل کشور. این نگاه کسرگره هست مسئولان با امور کشور آیا بحران آفرین است یا آیا حل بخن؟ بس ایست که شما جامعی را نمیتونیم تنواد را نفت کنیم استراد خطیه مستقیشت رو میشاره کردون جزی جزی حقیقت ذاتی انسان است. این تفاوت‌ها اگر شما در مورد مذهب تفاول را رو نمشته باشیم در بود فرحنگ رو بود دختار رو گفتار بینن ما باید بپذیر میدیم یک حقیقت واقعی در زندگی اجتماعی این سام ها کشورهایی که به بس صبح بستیدن برای مدتی با وسیله اندازگیری خودشان حقیقتها را اندازگیم بعدها دیدن که نه چنین چیزی به شدت شباز و جامعه را در, در وزید بد قرار اما دا باید نگاه من در نسبت در در تغییر بوده این تفاوتها را باید بپسیر تغییر که این ها وجود دارد ولی این تفاوتها را نمیشه بستاریگی قبول کرد آنچه که کمک کنه برای دعایت بحث کسته دعایت تنوادت یوامی صحبت پیرامونی مسئله است بحث کردن است و اجازه دادن به افراد اشخاص و دروها و احضار است که به صحبت بکنند به این مسئله را بیان بکنند زمینه برای گفتگوها فراهم شدند بیشتر اشاره کردم تا زمانی که ما یک دیگر را درد نکنیم و نشناسیم در واقع نمیپذیریم اگر خواست باشیم یک دیگر را بپذیریم پس اجازه بدیم چیزهایی که دارند باید بگوید ممکن این گفتگوها بر خیلی از موارد همش درست نباشه ولی در واقعی میتونم منتق شده برای ما باقیش درسته ما در توادر نظر باید دیگر در گفتگو باید دیگر در واقعی مسیری بهتر و درسته را شناسایی میکنیم و جامعه را در عسند به حرکت میاندازیم و سادمان را در عسند به حرکت میاندازیم پس در واقعی این خود یک ای افامل ثبات است مسئله دیگه ایست که باید با های سیزی کشور خاصت زمینه رو طوری فراهم رن که این تفاوت‌ها ها به صورتی واقعی مورد استفاده کاربورد کراوی دارد درست شاید بعضی ها هر این باشد که این تنواد و کستادگراهی نمتق به بیندزمی میشه در واقع اینطوری نیست اگر دادت ها بیتوانند این گفتگوها و این دیالوک ها را ما دیگر بکنم در واقع منتقی موشه من به منتقی موشه من به سبار منتقی موشه من به توسعه توسعه ناشی از فکر خلاق است، ناشی از تقابل دیگاه هاست ناشی از دیالوگی بین انسان هاست شما در خیلی از موارد وقتی که حرفی طرف نحکم میکنیم در واقع من طاقم و نظریاتی رو مطرح می خود این تفاوت درگاه ها منتج می شود یک مسیری معصر سر به یک راهکار ولی اگر باوری مایی باشر که این تنواز موجودیت این تنواز آسرزاز در واقع ما فکر می خود این, این،, این نمیست تفاکر آسرزاز در واقعی ما فکر این تنواز آسرزاز. ما شما نمیتوانید حقیقت ذاتی انسان‌ها رو نابوکن. نه خانواده خانواده‌ها متفاوت هستند، متفاوت حرکت می‌کنند. هر روزی که زندگی می‌می‌زارید در واقع شما دنیای از تفاوت‌ها رو در رفتار و, و حرکت خودتان احساس می‌کنید. حتی نمیتوان این تنوع در رفتار یک فرد یکوانه انگاه سخت یکوانه انگاری در واقعی شما می که با درک این تفاوت ها این نفا رو در مسیری درست شیرایت بکنیم پس در واقع نیاز برای از اینست که به منطور که جوامی دیگری تجربه کردن این تنوات تذیر رو این تنوات در مسیری درست استفاده کردن ما هم از این استفاده کنیم Key, و اجازه بدیم که این زمین اگر این گفتگوها پراهم شود و این گفتگوها این پتانسیل‌ها ها و این انرژی و این ظرفیت ها را در مسیح ای درستش بکار مثل مثلا تفاوت ایدار، دبگاه متفاوت است. انرژیست، تختار متفاوت یک انرژیست، فرهنگ متفاوت یک انرژیست ارزوش های مذهبی متفاوت یک انرژیست، تفاوت های رفضا های شیستی یک, یک انرژیست این انرژی ها را ما در درست رو ما در مسیر درستش به کار میدازیم شما بسید تقایی استرسیر افراد در واقعی تلاش میکنند که از منزوه های و درست خودماتی بیشتر, با با بیشتر با و با بیشت رو برای جاوی نیسانی فراهم سازند مگر کجای کار اشکال داره وقعی این ممکن نیست شما نمیتونیم به جانیه را مخلوصا از بود استیازش بس برسانیم شما این تنواد رو نفذیبین این تفاوتی دیتگاه در بودی سیاسی نفذیبین چوبو نمیدانیم عرضی خودما رو با کهی شد بسین شما رو نهد نکنه، اگر کسانی خطاهای طرف رو ازانگ نکند نشانی بزرگی نکند چگونه ممکن است که تغییر در وقتار مدیران یا،, یا کارکنان یا میزان سازمان. دو دو این جامعه باوشیده این نشانگزاری که کمک میکنه برای ازی که ما رسال و دفتار ما در مسیر درستش حدایت کنیم تشکر جناب استاد من حیث نویسندی کتاب مدیریات بابران شما در آخر کتاب از جاب رساندین با تاجب و محتویات در این کتاب پتره کردین و از نگاه شما من حیث نویسندی این کتاب کاستگرایی را یا نفس کاستگرایی را در مدیرت بحران چگونه از یاد نکرده؟ آنچون من از یک مقبولیت بسیار خوبی در یاد این تحبات خوردار است که تنواد در واقع آمیل است در آنی مدیرت بحران و عالمی پذیروش تنواد آمیل است برای فروزیزی هرمیزان برخی از پشواره ها به صورت تجربی در بحثی این کتاب مروش شده و دگاه های اندشمندان مروش شده خیلی از جوامی که یا به سوار پرسیدن و خیلی از نظام هایی که فرو ناشی از برخورد چندگونه همستود بر تنوع و گسترده کاری بوده. ا جوامعی که دست و اضرسی دادن، جوامعی که تاوسادار سی دادن، برای پای انسان چند ساعت پیش رو در واقع مثیلی که اینها هستند، مثیلی پذیرش و استوری معاصر از گستر کاری و تنوع اجتماعی در درون جوامعی بوده. این در واقع می توان گفت که این تفاوت ها و این تنواد خود پتانسیل‌های های بسیار سازنده است. مشروط بر اینکه این, این پوتانسیل ها را ما در مسیر درستش استفاده کنیم اگر نتوانیم این تنواد را در مسیر درست استفاده کنیم در واقع در مسیر محکوز استفاده قرار میگیم شما تفاوت های مذهبی را نتازیدیم و قبول نکنیم و از استفاده نکنیم طبیعتاً برعده شما استفاده میشه در شما هیچ شما خبر شما تفاوت فرهنگی رو نه کنید در واقع در مسیدی که شما میبینید استفاده نمیشه در مسیدی مکهوس یعنی برای شما استفاده میشه یعنی تفاوت سیاسی اگه شما تفاوتها را در دیدگاه اون میشه تفاوت دیدگاه را اگه شما بخواید که به سمت سوی منافع خودتان توجه کنین در واقع ممکن نیست و ای... بی‌فوتانش و این که بر علی میسره تا همین مخصوصا این تفاوت‌های کلان که در ساختار جامعه انسانی انسان مدرن وجود دارد اگر شما در مسیر درست استفاده نکنید در مسیر غلط علیه شما استفاده می‌کنه مثلا به قول ما موبدین در مسیر درستش استفاده بکنیم مخصوصا راهکارهای موثری که این پتانسیل‌ها و این انرژی واخره در مسیر درست استفاده بکنن تسیروش این تفاوت‌هاست تذیروش این تفاوت ها و استفاده از این تفاوت ها و به کارانداختن درست این, این, این تفاوت ها است. اگر شما نپذیرین خصوصیات و ویژگی های فرزندان و در داخل خانواده کارکنان <IL> و در درونی دل سازمان ها طبیعتا این انرژی علی شما قرار می این, این مواد و منابع علی شما قرار می گیره که منتج می شود فروغیزی، فرضیه منتج میشه شود به و منتج می شود بس استفاده از این از این از این بلکوی که با. اولی هاست ما هم در, در مدرت بحران امین بوده که ما باید عامل هایی که در جاوی منتج میشه به بحران بر شناسایی کنیم و پس از آین, این شناسایی ما به راختکارهای مؤثری را به کار بیندازیم که اگر دستورت اولی بردید این بحران ها شکل نگیره و اگر جای این بحران ها سر کلمی جنن ما باید به صورت اوتوماتی باید را کنیم و کنترل بخنیم اگر نتوانیم تاگرسا جامعه میره و سمت به ثباتی اما طور که لوسین پای چند بحران در مطمئن بحرانی خوبیت هست <تصفيق> بحران خویت من اصلا من نمیکنه ایش آدمی پذیروشیت نه وارس. وقتی نه وارس، پدری جامی پذیروتنه سه، جامیر دستیک بهرانی. بحرانی نیه بر، بهرانی خویت هم پایی. دیگه بیشتر کلان بوجود میره، ممکن برای کارنها یک جامیره در آشوب دنیا. میتونی پس بحث بهرانی خویت مثلا یه بهرانی من درش. اگر مناوی و امکاناتی که به صورت درست درستش. توزیع آدلانه مسخ نشه. طبیعتا جامعه سمت بیشتر تو این بود. اساسا که مناویر نمی گزاره چه بگم تو مسخشه، اگر یه وضعیت نواب باشه. وقتی شما تو نوابا میرید دیدگاه شما نسبت ساختار جامعه دیدگاه و نگاهی متفاوت است. این دیدگاه و دیدگاه های متفاوت در جامعه منتج می بشه از توزیع ناعادلانه ناعادلانه منابع. بسی بسی توضیح می‌نویم، بسی بحرانی مشارکت می‌کنیم. وقتی که تنوعات وقتی این تفاوت‌ها پذیرفتن اشاله، بسی فرهنگ تفاوتی فرهنگی پذیرفتن اشاله، بس بسی تفاوتی گستاری می‌پذیرفتن اشاله، تفاوت وقفداری پذیرفتن تفاوت مزخرفی پذیرفتن اشاله، تفاوت سیاسی پذیرفتن اشاله، مردم مشورت من مردم حمایت می‌کنند از ساختارها. چی از تحتی کلام و خود از تحتی پس اینجا خود منطق به صورت اتوماتیک منطق میشه به بران مشارکت این مردم در تصمیمگیره ها با ساختار حاکم همگام نمیشن دخل منطق میشه به بران عدم مشارکت و این عدم مشارکت منطق میشه به بران مشروع چرا شما همجود میخونیم که ساختار ها، حاکمیت ها منشه ای در شوند در پینده امروز مردم مش... است. به هر اندازه ای که مردم در یک جامعه از ساختار قدرت حمایت کنند از حاکمت حمایت بکنند در واقعی حاکمت مشروعیت و محبولیت بیشتر پیدا میکنند این قرارداد اجتماعی در واقع تحکیم میشه مردم متعهف میشن که باید برای ثبات برای پیشت و تاغید همکاری کنند و اگر چین چیزی شکل نگیرد در واقعی بحران مشارکت پسا بحران مشروعیت را موجود نه در واقعی این این این بحث بحثی بحثی بحثی بحثی بحثی بحثی رنگی از این که الان از وقتی ما بیشتر روشن اینا در واقعی خودی از اینها برمیگرده برمگذر به اولی پذیغوش تنواد تحسط درایی و موثقیت تفاوت و که در صفات جوامع وجود دارد اگر بیپذیریم ما می از از انواع بحران در جامعه در کنیم در و اگر نپذیریم و, و, و, و بخو که و بخویم که یک اون کنیم جامعه را مطابق طرز دید یگانه‌ای خود کنترل و موزگر بودیم طبیعتاً که جامعه میره دستان تیوی سباتی است تشکر جناب استاد به عنوان بحث پایانی و به عنوان راهکار بحث امروز ما شمار در راستای نفش کسرتگرهای در حل منازال چالش و مدیرت بحران در افعانستان است اگر جنبندی کنیم بحث سر بسیار خلاصه مطرح کنیم که چگونه تسرتگرائی در حل منازعات و مدیریت بحران تأثیرگذار گذار است که تا در برای اندان بر افمانستان سلحامیز و مرفض است؟ اساساً این تفاوت ها دستوید که ناشناخته واقع بمانند منتج میشه به تفاوت گفتار و دیدگاه و رفتار تفاوت در دیدگاه در و گفتار و رفتار در واقع منتج میشه برای تعارض این تعارض ها بی تردید میره به سمت درگیره های جامعه به سمت بی هدایت میکنند. کنند ما زمان تفاوتها پذیرفتیم ترک کردیم و پذیرفتیم گفتگو کردیم و صحبت کردیم صحبت و گفتگو گفتگوهای ما منطق به ایستماع دیگر بپذیریم احترام بکنیم و به صورت گام برداریم در واقع همه زدکیت را در مسیر درستش به کار اگر ما نتوانیم این, این،, این تفاوت ها را ترکنیم یک دیگر را بپذیریم در واقع به صورت ما علیه یک دیگر قرار میگیریم خداگرسن یک دیگر منطق میشه به قانومی ثباتی و فرو ریزی هر ساختاری چی ساختار خود ساختاری جد. اگر ما بشینیم صحبت بکنیم و گپ بزنیم جلوی هر گونه بحران میره دسته سطح خرد میره در سطح, می سطح کلام میتونیم بگیریم و بدونونه رفتن به سمت گفتگو ما چه نمیکنم که ما بتوانیم خدارات که در بعد این بحران ها به وجود بیان ما مسعون بماریم ولی باز کار میکنم که ما برای رفاه یک جامعه باید بیپذیریم این تفاوت‌ها و این تنوهاد را واقعی بینانه بیپذیریم و پس از این با درک این تفاوتها بستر را برای تذیروشی دیگر فراهم بکنیم گفتگوها را به وجود بیاریم این گفتگوها به هر پیمانه که صادقانه ادامه بیدار بکنه همی زرفیت ها و نیرو و انرژی مولود در جامعه در یک مسیری واقعی قرار می که جامعه به سمت سوی اصطبات و تاستانی دارد اگر در صورت که ما این تفاوت ها را نپذیریم و قبول نکنیم فراموش نکنیم که ما هر گامی که بر به سمت بیثباتی بر و در واقع ما به جایی که گامه بر به سمد توصیر برداریم ما گام را و الخبر میره تشکر جناب استاد سروری استاد فانتونی کابل و نویسنده کتاب مدیریت بحران از حضور شما در بحث کسبتگرای و افغانستان شکر شما شنویندگان و همراهانی گرامی با تاجعب مباحث با جناب استاد سروری داشتیم در بحث امروز در پذاریش و مدریت تفاوتها مسیر رسزن افغانستان با صلح اجتماعی برفا است. تا دیداد دیگر شما را به خداوند متعال کنم. برنامه از طرف موسسیی مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این موسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نش کردید.